حدیث دوم که در این مد داریم حدیث دوم رسول الله صلی الله علیه و سلام اعلان نکاح حدیث خیلی کوته خلاصه هست در بعض از روایت اومده و ضرب عليها بالغربال یعنی با بفهم الون بکنید هرچند که اون قسمت شیخ الوانی تضییف کرده و بعضی هم تحسینش کردن یعنی بحث بحث اشهاره یعنی سری نباشه ازدواجتون علنی باشه اعلانش بکنید خصوصا بحث شادی هست انسان شادی خودش رو با دیگران در اون شریک بکنه و این حقوقی هست که اون زنی که ما میگیریم به گردن ما داره بالاخره میخواد خانوادهش رو خودش میخواد بدونن دواج کرده اگر رفت آمدی هست اگر طر هست این محرمشه این بالاخره از شک و شپی بیرون بیاد و خیلی از مسائل دیگه اعلان باد بشه نکاح تا شبه ها برطرف بشه بعدم. اون خانواده ای مثلا اون زن احساس عزت بکنن اون زن احساس اساس عزت بکنه که اون شوهر براش عزت قائل شده ارزش قائل شده بعد اعلام بشه یعنی حداقلش همون که رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان رسولان انجام می شده با زدن دف دایره می‌نشستن زنا مثلا دخترها دف می زدن و هرچند که این کار و این سنت سنت زنا هستند، مردها در زمان رسول الله صلی الله علیه و کاری انجام نمیشدند مگه برای زنا و وقتی که عموم مؤمنان عاشق دخترانی کنارش بودند، دف میزدند. و صدیق دیگر دیاللله وقتی ورشد این کار کرد، فرمود اما زمیر شیطان فی بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم مزمار شیطان در خانه رسول الله. چون محدود نبوده، چون نبوده. این مطلب را خیلی مفصل در آهنگ. و در کتاب آهنگ توضیح دادم. نیاز به توضیح اینجا نداره، ولی که این حقوقی هست که زن به گردن ما داره و لازمه این اعلان در زمان امروز بحث ثبت ازدواج بحث نمیدونم سند ازدواج ثبت درشناس آمه هست چرا در این بحث اعلان واردش می کنیم چون حقوق زن حفظ نمیشه مگر با این یعنی مثلا اون چیزی که مثلا با شهرت با اعلان ازدواج قبلاً صورت می گرفت مثلا ارس و میراس و نفقه و غیر خب الان شاید مثلا این قضیه مقام اون را این مثلا سنداتی که از ما میگیرن و این تعهدات و دادگاه و نمیدونم چی گذاشن و وسائلی گذاشن در حکم اون مسئله قرار بگیره این حقوقی هست که زن گردن ما داره چون این کارها از این مرسوماتی که بر ما شده یک وسائلی شدن برای دادن حقوق و گرفتن حقوق و الا گفتم این اون چیزی که مهمترین چیز هست بحث شهرت دادنه غیر از اون قضیه اشهاد یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می الا بشاهدی عدل و ولی هیچ نکاحی نیست مگر بر ولی و دو تا شاهد عدل شاهد عدل اینا شرط صحت نکاحه ولی کن اینجا امر رسول الله صلی الله علیه و سلم خارج از اون بحث شروط در صحت نکاح بحث این که عروسیمون علنی بشه و ازدواجمون به این اون گفته بشه و همونطور که رسول الله صلی الله علیه و از ما خواستان اولم ولو بشه اولم ولو بشه, اول بشه. ان بلیمیم هم برپا بساز هر چنکی با یه گوسفند باشه بالاخره دوست خانواده نزدیکانی هم دعوت بشن هم بحث نکاح و هر آداب و مسائلی که هست شیخ الحالبانی رحم الله در کتاب آداب الضیاف کاملی این مسائل توضیح داده گنیاز به بحثش نیست ولی خب من فقط گفتم این حدیثی که در دو کلمه هست رو میخوام توضیح بدم